Gorszany chowar zemien, a jutarn, a jutarn, mądarym rdaferem, گل شالی خوا زمیں ای وطن ای مرد افرین هستی ما ای وطن دامان دمان تو جان و دلی مابتن، وطن هر دو و تو هستی ما ای وطن دامان دمان تو جان و دلی مابتن، وطن هر دو و تو ای وطن ای وطن گل شالی Awata Awata Moari Mary do farim Awata Awata Guszli chowa zami Awata Iwata Moari Mary do farim Zibai u naslinał Małdzie choroszoni tu sytoreji pesz ra gało Hari tu Ziba harii u naslinał Małdzie chorozoni رای پهشرو را وطن وطن و ایواتن، ایواتن، زمین ای وطن ای وطن مادر مرد افرین وطن ای وطن گلشاخ و زمین وطن وطن فکر تو دانش در اخشان تو اختری پرتوفیگن فکری جوانانی تو دانشو ظلمت شکن مهر در تو ای وطن ای وطن گل شنیخا و زمین ای وطن ای وطن مادری مردا فرین ای وطن ای وطن گل شنیخا و زمین ای وطن ای وطن مادری مردا فرین جان کنه موسر نیسار بروز میدان تو وصف افتخار جان من و جان تو جون کو نمو سر نسار بروز میدان تو وصف این افتخار جان من و جان تو ای وطن ای وطن گلشن زمین ای وطن ای وطن مادر مرد افرین ای وطن زمین Aiwatan, Aiwatan, Madari Mar do farim, Madari Mar do farim, Madari